بخش ششم فرداش هم تا شب خبری حسن نشد نمی از اینکه که ازم یک بازاریاب عوضی در بیاورد قطع امید کرده یا اینکه از همان دیشب با هم به هم زده است چون شما این پسر کل خر را نمیشناسید. سر هیچ و پوچ یک بارگی یک از خودش در می آورد تماشایی این بود که خودم بهش تلفن کردم خانه نبود یک بار هم آخر شب تلفن کردم بود دست بر غذا نه قهر بود، نه قصداش دست از سر کچلم بردارد. تازه به قدری هم طبیعی برخورد کرد که تقریبا مطمئن شدم کاسه ای به چه بزرگی زیر نیم کاسه هست. چون کاری که دیروز در حق حسن کرده بودم، کاری نبود که او نخواهد تلافیش را سرم درآورد. کمی لفت لیس کردم بلکه حرفی از کار وسط بکشد. در این قضیه کلمه. وضعیت اعصابم جوری است که نمیتوانم زیاد با کسی تلفن صحبت کنم. وقتی تلفنی با کسی حرف میزنم دوست دارم قیافش را هم سیاحت کنم وگرنه حوصله برایم نمیماند. حتی پیش آمده که به خاطر همین مسئله ساده گوشی را بدون خداحافظی قطع کرده باشم. با این کارام هم تا حالا خیلی ها را از خودم دهم ولی باید دانست که یک سری از مسائل به اعصاب و روان آدم مربوط می شود. آدم ها باید سعی کنند گاهی داوطلبانه دیگر را ببخشند. اصلا خیلی طبیعی حدود نیم ساعت حرف زد. چیز گوش پرکنی هم تحویل نمیداد. آسمان را به ریسمان میوافت که مثلا با من خوش بش کنند. ازش خواستم قبل از اینکه مجبور بشوم کار احمقانه ای بکنم خودش قال قضیه را بکند. قبول کرد اما قبل از خداحافظی گفت که فردا ساعت پنج اصر حتما پیم میآید و پیشنهاد خیلی خیلی مهم می دارد که از شنیدنش مورمورم می شود. جنگی فهمیدم که کار خیلی خیلی مهمش همان کاسه زیر نیم کاسه است اگر قبول کنیم که تمام این نیم ساعتی که با من حرف زد جزی از یک نقشه کثیف بوده، حتما تصدیخ هم می کنید که باید چقدر ماهرانه طراحی شده باشد. هنج نشده خودش را رساند دوباره مثل دیشب شروع کرد به حرف زدن از هر دری سخنی تمام مدت معلوم بود که یک حرفی مثل ناق توی گلوش گیر کرده است ولی نمیدانم چه اصراری بود که لغمه را این همه دور سرش بچرخاند می میگفت هیچ من از کجای تو پسر چند بار تو کوچه سرکش دم نبودی کی دیروز آره یعنی کی دیروز دیگه دیروز بعد از زهر. دیروز بعد از خودم اقلن سی بار از روی خرپشت سر و گوش آب داده بودم. هیچ اثری از آثارش نبود. بهش گفتم بارو ناکست دیروز همه ی تو کوچه بودن. الا تو یکی؟ میگم نه به جون داداش. از آقا سید بپرس. آخه یه بارم از اون ردتو گرفتم. گفت نیستی؟ این را حق میگفت. آقا جون همچه اخلاقی دارد که دوستانم را سنگلاب کند. گفتم آلا باشه. این حرفم شکار شد. یعنی چی باشه؟ دارم بهت میگم اومدم. جواب آخریش رو تحویل نگرفتم. گفتم حالا یا اومدی یا نیومدی دیگه. چه خیالیه؟ اصلاً بیای با من الاف آسپاس بپری که چی؟ تو که همین الانش هم داری با از ما بهترون میگردی. ما هم که اینجا غاغیم. چی داری میگی عباس؟ چرا دیگه؟ مگه دارم جفنگ میگم؟ چهار نفر آدم آیدار دور خودت خود دیدی هوا برد داشته مگه ریش اون یارو مجیدو ندیدی میدونی چقد پول همون بود اونم هم نه کامپیوترشونو چی میگی لباس لباسشون هم که اونجور تازه همین روزاست که چند تا چیز دیگه هم بخرم او بیا خر باقالی بار کن اینا که دارم میگم شوخی نیست حسن لبخندی روی صورت حسن بود که انگاری موقعی خندیدن جانش در رفته باشد سرد و ساکت گفت بس کن رفیه. رفیق رفیق رفاقت کجا بود حسن چهار تا آدم قازقولنگ دور بر جمع شدن پاک رو یادت رفته نه که کسی حرف زده باشه ها قشنگ معلومه اینقدرم با کلاسن که صاف مینن تو اکواریوم سرشون رو میکنن. میکنن حالا مسخره‌ام به هم خورد چرا داشتم این حرفا رو بهش میزدم حداقل این جمله آخری رو باید درس میگرفتم داشتم با این حرفها نقطه ضعف نشان میدادم حسن وانمود کرد که از حرفایی که نثارش کردم خیلی طول لب شده است گفت بابا جا من اصلا با اینا سنمی ندارم حضرت عباسی من یه موی گندیده ای تو رو به صد تا مثل اینا نمیدم آفرین اگر در آن لحظه سگ نبودم حتما بابت این حرفش بکس گلون را میگرفت اما مشکل آنجا بود که برای باور کردن مساله موی گندیده دیگر به حسن اعتماد نداشتم برو منو سیاه‌کن منو کشون اونجا که چی مثلا تو روز روشن میخوای منو رو زیر زیرشاخه کنی زیرشاخه کلمه ای بود که قبلا خودش توی دهانم انداخته بود وگرنه من این چیزها رو از کجا باید شاخه زیرشاخه چیه؟ میخوام با هم کار کنیم با دستش آرنجم رو گرفت و با هم به سمت سر کوچر راه افتادیم. احتمال میداد حرفهاش وسط پیاده رو بیشتر روی مخم اثر کند ادامه داد این یه موقعیت حالیه دوست داشته باشی وارد میشی و ها ها وارد میشم و چی؟ به موفقیت نهایی میرسم؟ برکن سر تو خودت این همه چریدی کدوم بد؟ من اگه نیام زیر شا تنهایی میتونی به موفقیت نهایی برسی؟ اگه رسیدی من اسمم عوض میکنم این سیستما هرمیه هزار نفر باز جون بکنن که یه نفر پولدار بشه خیار کری چی پس؟ کار کنین دیگه پس لابد میخوای یه نفر جون بکنه هزار نفر بخورن پروی رو هم نمیگفت اما این حرفا به من چه؟ گفتم آلا اینا همه ای چی؟ لاله رو چی میگی؟ به لاله چه ربطی داره؟ آها راستی گفتی لاله چرا اون روزی نیمد خونه مجرین ها؟ پاک رو دم سگ پشت پشته هم فوت میکرد برکه کمی آرام تر شود من الان یازده سال است که این آشغار کله رو میشناسم همه این مقدسات اگر از دست کسی نصف این هم عثوانی بشود اسم طرف را روی سنگ میکند. باز خیلی خاطرم عزیز بود که زیر سبری در میکرد. در آمد که میشه در مورد اون دختر حرف نزنی میشه؟ چرا نشه؟ پس دیگه در مورد اون یکی حرف نزن. هیچ خوشم نمیاد با چرا؟ اگه قضیه ناموسیه اگه از بگو. پاک به هم ریخته بود ولی عجیب بود که مشت اول را نمیزد. فقط گفت دیگه داری شرور میگی عباس خام اینا نشو احمق جون اینا همش دنبال اینن که نوتوق آدم ها بکشن بی خودی تو صابون نذخ خیال تاش موفقیت نهایی مال کی میشه خر خدا مال من و توی آسمون جل نه خیرم آخرش هم میشه کار کردن خر خوردن یابو تازه مگه خدا دی نمیگفت که شرکتشون خارجیه خب که چی ایرانی و خارجی داره مگه نه پس نداره هیچ میدونی اینو کجایی هم؟ اینا همه انگلیسیان هم میخوان منو تو رو به جونه هم بندازن خیالشون راحت شه دوباره شروع کرده بودم انگلیسی کجا بود؟ وقتی هادی داشت حرف میزد سرد داشت با کجات بازی میکرد؟ با کجا؟ کمپانی توی هونگ کونگه یه شرکت چند بزرگه وزارگه مگه ساختمونش رو تو کاتالوگ هادی ندیدی؟ از این سرش اون سرش دیده نمیشه؟ داشت نعل وارو نمیزد. اصلا به این حرفا نیست. وگرنه که برج میلاد از همه ساختمانها گندهتر است. نباید گول ظاهر هر چیزی را خورد. گفتم دیگه بته از این چند ملیتی که میگی چندتاشون انگلیسی باشن خوبه. این بار تاب نیاورد. چشمش حالتی شد که نمیشد گفت حرفهای من تأثیر کرده یا چی. گفت به قبر پدر پدر سگ من اگه یه دفعه دیگه بخوام با تو حرف بزنم دهن آدمو دیدید گفتم این حسن از همان بچگی اعصاب نداشت گفتم خب حالا چرا قاطی می‌کنی حرفتو بزن دیگه حرفی ندارم بزنم چه حرفی دیشب گفتی کارم داری هیچی میخواستم دعوتت کنم یه جایی کجا ولش کن میایی که حالا بگو میخواستم ببرمت یه جایی مگه میای؟ انگار که سوال کرده باشد، میخواستم میخواستم جفپا بپرم توی صورتت مگه میخوای گفتم دست از سر کچل من بردار هستم. بذار زندگی خودم بکنم. زر ناشتا میزدم. زندگی من اصلا چیزی نبود که بخواهم تمام وقتم رو سرفش کنم. باور کن اونجا نیست به خدا قول. خیالش من با جاش مشکل داشتم. اونجا نیست. همون جوری که هست. دوباره همونان. من یه چیزی میدونم دونم که میگم؟ گرم. اون خره پالونش عوض میشه. باز اصرار کرد. نه میگم اونجوری هم نیست همونجا هم نیست فرق داره بیای خودت میبینی بگویی نگویی کمی غلغده کم شد خواستم بهش بگویم دوباره چه نخشه تو سرت کلک اما ترسیدم که بهش بر بخورد به گفتم باز چه خوابی بازم دیدی عوضی این را با لحن خیلی ملایمی از شوخی بهش گفتم که بعید میدارم توی آن لحظه متوجه شده باشد چون خیلی زیاد به دل گرفت گفت راحت باش بیا تو دمه در بده این هم از اخلاق سگش آخری ها حسرت به دل مانده بودم که دل سیر دوتا فحش بارش کنم خودم قبل از این ماجراها هزار سری بدتر از اینها به خی بسته بودم آن وقتا با دل آدم راه میامد ولی تازگی خیلی نازک نارنجی شده بود به هر حال به دلیل بعضی از ویژگی های متوسط اخلاقی که دارم دیگر حرف رو باهاش کش ندادم گفتم حالا هست؟ گره از گره شکفت میای جون عباس؟ به جده. پس قرار رو بذارم؟ آره دیگه چرا نه؟ هم تماشا نه فال بود نه تماشا کجا میخواستم بروم؟ گفت هانه اگه جور شد واسه فردا خوبه؟ محرکه است فقط باید بگی فردا کی چه ساعتی؟ حالا شما فکر کنید که من از مدرسه اخراج شدم صبح تا شب هم بیکار و بی آر ویل میچرخم دارم و اصلا میگویم فردا چه ساعتی نمیدونم اگه بشه که فردا طرفایی بعد از ظهر میشه فقط دیرتر نشه باید برم به جایی برسم لبخندی روی صورتش نشسته بود که نمیشد گفت از سر خوشحالی بود یا دارد آدم را دست میاندازد پس من قرار رو بذارم خبرش رو بدم. میدم بنکل کارش هم مثل آب ماله ای میرفت و میآد زگیر شده بود یا خبر میبرد یا میآورد می توانستم چول چرخش بگذارم ولی راستش را بخواهی دلم نمیامد غیر از پرسپلیسی بودن از معدود اعتقاداتم که تا به حال عوض نشده این است که بازاریابها انسانهای انسان های که قصد دارند از روش های غیر انسانی پول و پله به هم بزنند و این از آن جمله اتفاقاتی است که ممکن است در زندگی هر کسی بعد از ظهر فردا حسن تماس گرفت قرار انداختن واسه ساعت دو امروز خونه مجدینا بهترین فرصت بود که نه توی کار بیارم نمیام اونجا نمیام گفته باشم گفتم لاله هم بیاد سری پیش هم همین قول رو بهم داده بود آدم عاقل از یک سوراخ دوبار نیشنه نمیخورد گفتم نمیام میگم یعنی چی دوباره بازار گربه میرخصو گربست اگه کیه؟ مگه عبرش نگفتی خونه مجید این نیست؟ من اونجا نمیتونم بیام من آبم توی جوب مجید نمیره درستش این بود که بگویم آبم با مجید توی جوب نمیرود ولی زبانم نگشت قبول دارم که تو پخ خب میگم اون نیاد مثلا داشت به این باجه سبیل میداد اون نیاد؟ داریم میریم خونه یارو بعد بهش بگیم تو نیا چطور میشه همچون چیزی؟ یکم به حرفی که میزنی دقت کن. خب به خودت بگو آخه اون چه کار به تو داره؟ حالا یا داری یا نداره اونجور که دوست دارم باحال نمیکنه. من که نمیتونم با هر کسی که از ننش قهر میکنه قرار مدارو بذارم هستن. تو که بعد این چیزا رو بهتر از من بدونی. با این حرفا کاملا بهش اطمینان دادم که در این مورد کوتاهی نیستم. برای همین گوشه رو قطع کرد و ده دقیقه بعد دو مرتبه زنگ زد. و با ولحن آدمهایی که کاری رو فقط از روی خیرخواهی انجام دادند گفت شد آریا شهر فردا کیا میان؟ اشکی فقط لالو و سروش حالا شد گفتم چه ساعتی؟ سر ساعت چهار دیر نیست؟ نه دیگه مگه نگفتی ساعتش مهم نیست طرف بعد از ظهر باشه دور نیست؟ چیه؟ چه مرگت دوباره؟ هیچی، فردا ساعت چهار آریا شهر خداحافظ حقش بود چند تا شرط و بعی دیگر هم می کردم. به هر حال من دلم خیلی پر بود و حسن باید به من حق میداد یکی از کارهایی که باید بکنیم این است که گاهی اگر لازم شد به کسی که خیال می کند حق دارد حق بده